شوخی نیست؟ یعنی میتوان باور کرد که خداوند بزرگ اینجور چیزها را میسازد. این اسنادها ها به حضرت خداوندی است نه عرف های من انتصاب اینها به خداوند کفر است و بدتر از کفر دشنام است اگر کسی مرا که یک بنده ضعیف آجز و بیعرج خداوندم متهم کند که در این کارها دست داشتم آن را تهمت ناجوان مردانه ای تلقی می کنم که هرگز نخواهم بخشید و مطمئنم که نه کسی چندان ناجوان مرد و بیانصاف است که هرچند با من دشمنی برزد و کینه داشته باشد و بخواهد لجن مالم کند چون این افترایی بر من ببندد و نه کسی چندان بیعقل و نافهم است که چون این زشتی را نسبت به من باور کند. خواهید گفت؟ نه؟ مسلحت خداوند اقتضا می‌فرماید که آدم شر و خونریز و بد و گناهکار هم بیافریند و در این حکمتی است این اندازه ها را میدانم من از آدم های بد و گناهکار و آدمکش صحبت نمی‌کنم. از آدم ابزی و بی خودی و بدلی و ناشیانه و بی معنی و کشکی و بی همه چیز و هیچ و پوچ و بی مصرف و بی خاصیت حرف میزنم که شایستگی بد بودن و عرضه گناه کردن هم ندارند مردی که برای لغمه نان و پاره استخوان دم می جنباند و پوزه بر کفش ارباب میمالد و تحصیل کرده متشخصی که برای احتمال انزال ای و جلب انایت بالاتری به جان کسی دعا می کند و یا بخچه حمام خانم آقای رئیس را بر و آن دانشمند استاد دانشگاهی که وقتی قوام و اکبرخان را صدا میزند او از قیبت وی اقتنام فرصت می کند و خود را پریشان و شوق زده روی کفش های حضرت اشرف می و با پوشتش آنها را چنان برق می اندازد که سیمای آلمانه با خوشبخت خیش را در آینه اسکندری که جام جمع اوست می بیند و از این کشف و شهود که خدایش را شناخت و در نتیجه خودش را غرق لذت جذبه و خلصه آرفانه می شود و احساس می کند که به مقام فنائفل او ناعلامده و لاجرم بغای بل او و حلاجوار می که در جبهش جز حضرت عجل نیست و واقعا هم نیست. آدم‌هایی که جرأت ندارند از پیش خود بدون اجازه بالاترها حرفی را گوش دهند، آدمی را بفهمند، از پیش خود بخندند، مخالفت کنند، موافق باشند و انتخاب کنند. نه چیزی را، نه حتی خود را، حالت خود را همیشه دیگری است که چگونگیشان را می سازد. آدمهایی که درست دهانه آبنبار خالی و مخروبند که هر صدایی را که دم گوششان ول میکنند، عیناً اما با تنین بیشتری از دهن پس میدهند و با لحن کشدار و پر افتخاری که انگار صدای خود اوست. آدمهایی که با یک خروار سابقه، پرونده کارگزینی و مدارک علمی و تشفیق نامه های مسلسل که از طرف مقامات بالا به طرف پایین صادر شده است. مثل یک چغوک با یک دانه توت نیششان را تا بناگوش می و با یک موچست روی شانه می پرند و از جیرجیر جیر شادی و شعفشان گوش آدم را کر می کنند و از التهاب شوق و خوشبختی روی پایشان بند نمی‌آورند. آدم هایی که با پدرزنشان ازدواج می کنند. یعنی عیال ابوی خانمند، آدمهایی که نه، شرمآور است، دور از افت یادآوری است و منافی نجابت تصور. خانواده های وااک که خیال می با سرپا تولید مثل کردن و زبان خود را یک هو و بی خودی فراموش کردن و از تاریخ و فرهنگ خود چیزی ندانستند و حتی اسامی خاص و اصطلاحات رایج را تلفظ نتوانستند و شب جامویه کاج خریدن و شب نشینی درست کردن دیگر آسیایی نیستند و وارث فرهنگ و تاریخ و تربیت اروپا شدند و ملایی که با چند سال در حجره مرتوب مدرسه قدیمه برای کسب علوم دینی و فضایل روحانی تنها جهاد و اجتهادی که در راه علم و دین کرده این بوده که شبها محتلم شده و روزها با تشریفات مفصل فخی و مراسم پیچیده فنی، تهارت گرفته و سیغه کرده و امامه پیچیده و به همین دلیل خود را جامع معقول و منقول و عارف به حقایق امور و آشنای خصوصی اسلام میداند و آثار روماتیسم و رطوبت زدگی و نقرس و بی حرکتی و ظلمت پربری او را از رمغ انداخته و در نتیجه متین و عمیق و اهل روح و تقبا و مرد آخرت نموده و باعزی که چون تا اما بعد بیشتر نخوانده است روزنامه های خبری و اخبار مجله ها و احتمالا کتاب های فیزیک و شیمی و علوم طبیعی دبیرستان ها را تبرغی کرده و از مد نظر مستطاب مبارکش گذرانده و حتی در ریاضیات جدیده بر چهار عمل اصلی تسلط جامع و کامل به دست آورده و حتی بسیاری از اهم حروف مشکله قالب خطوت امروزی ملل راقیه اروپا و آمریکا را به سهولت و در بادی نظر تشخیص می دهد و نام فارسی کتابش را به دو خط فارسی و لاتین در پشت و پهلوی جلدش کتابت می چنان خود را حاوی علوم قدیمه و جدیده می‌پندارد که علیه اروپاییان که به تازگی به فرضیه اتم معتقد شدند و جای تأصف است که جوانان کم اطلاع خود ما خبر ندارند که آنها این فرض را از قائلین از حکمای ما به جز یت جزا اختباز کردند. کتاب در رد اتم و میکروب و پاستور خائن و داروین میمونزاده و ابطال طب جدید و داروهای فرنگی می و در عین حال اثبات می کنند که تمام این علوم و همه اختراعات و اکتشافات جدیده کفرآمیز مادی در قرآن ما هست و حتی پرتاب آپولو دوازده را پس از پرتاب از آیه و فتحت سما که قیامت را شرح می‌دهد به نیکسون خردمند خبر میدهند آدم های جبون و ذلیل و خپله که در پس مذهب و تقدس مذهبی پنهان میشوند و روشنفکران زوار در رفت که از ترس آجان به نیهلیسم پناه میبرند یا برای رفع بی آبرویی پیش رفقا پشت نسیونالیسم یا دیگر ایسمهای آبرومند بیزرر قایب قایم میشوند و از پس دیوار ایران باستان با صاحب زمان لاس میزنند و هنرمندانی که از سنگر چپگرایی پیشتازانه مترقی درست سر موقع نیش قلم را بر آسمان میکوبند و چه پر پرمعنایی از هماهنگی قشقش سر قلم آسمان کوب این پیشتازان نو و درق درق ته قنداق توفنگ زمین کوب آن پستازان کهن در میان زمین و آسمان این کبیر ساکت تنین انداز است و چه خوشبخت و بی دردند آنها که با این سمفونی های مکتب کلاسیسیسم مدرن آشنا نیستند مفصل است همینقدر که نمونه‌ای داده باشم از انبا و اقسام لا و و لا و حسای این گونه هیچ گونه و چوسفیل های ناطق که آبروی اولاد قابیل را هم بردند بزرگترین مسئله فلسفی که در هستی مرا به شگفتی وامی دارد و برای مچهولترین مسائل ماورا و طبیعی به هر حال حدسی فرضی خیالی میتوان کرد اما این معما را با هیچ فوت و فن سفستی هم نمیشود شود توجیح کرد همین خلقت اینهاست آن همه دستگاههای های پیچیده علمی دقیق و معجزاس در خون و قلب و کلیه و قده های عجیب زیر پوست و ترشوهات شگفتانگیز بزاغ و معده و غیره و شبکه های چشم و سازمان های گوارش و گردش خون و تنفس و اعصاب و همه سرهم شده است و به هزاران اعجاز خدایی با هم ترکیب شده است و درست که شد و راه افتاد، میبینیم عرق از تمام روزنه‌هایش می‌شورد و دلش می‌لرزد و دست و پایش رعشه گرفته و مثل کسی که دم مستراح تحت اشغال انتظار میکشد و به سختی و خودخوری این پا, پا میکند و هی دستش را می برد به بند کراواتش و آرزوهای رنگین همراه هیجان در مغزش به رقص آمدند و هی خدا خدا می‌کند تا در اتاق تحت اشغال آقای رئیس باز شود نوبت او شود چه بگویم دنیای اینها دنیای اربعه است و خودشان هم هم همین واماندگان قابیل را میگویم ساکنان دنیای اربعه آب و خاک و آتش و باد آدمهاییاند با تبایع اربعه سودا و بلغم و صفراو و دم و مزاجهای اربعه حرارت و برودت و رطوبت و یبوسد. مقیم ربع مسکون. غمها و شادیهای این حیوانات ناطق چارپایهی نیز بر همین گونه چهار جور است. مختصر و متقارن و موزون و مقفا. و نیز چهار چیز به ترتیب اهمیت حیاتی. شکم و زیر شکم و تنپوش و نشیمنگاه. خلاصه همه چیزشان عربعه است هستی و حیاتشان دو دو تا چهار تا باز هم اربعه اربعه در اربعه در اربعه در اربعه چه خوب، چه راحت چقدر فاصلهشان با خوشبختی نزدیک است درست چهار انگشت باز هم شد اربعه اما تک و توک گوشه و کنار این دنیای اربعه انسانهایی هستند غیر اربعه انسانهایی بیشماره و بینشانه تک انسانهایی بیرون از حد و حساب شلوغ و در هم ریخته و ناساز که در آن سوی دیوارهای اارربعه دنیای این خلایق اربعه زاده اند و زندگی میکنند زندگی؟ نه زندهاند برای اینها رنج بزرگی است زنده بودن حتی بودن خود مصیبتی است. و ماندن که میکشد درد بزرگ و بی درمان اینها گم کردن است دور افتادن است با آن عربعی ها دمخور نیستند نمی سازند عمری با آنها هم قطار و هم و هم دین و هم وطن و هم شهری و همسایه و هم خون و هم خانه و هم همند و همچنان بیگانه و دور به فاصله یکی از میلیاردها انسانی که در قرنهای آینده در سرزمین نامعلومی از استرالیا متولد خواهد شد با یکی از میلیاردها انسانی که در قبیله‌ای بی‌نام و نشان در ای از نقاط کوهستانی آفریقای جنوبی پیش از تاریخ متولد نشده در جنین سخت شد هر روز اینها را می‌بینی و گویی برای نخستین بار است که می‌بینی و آن هم دیدنی هر روز برخلاف انتظار همیشه عجیب باور نکردنی هرگز در طول سالیان دراز همنشینی میانشان ای در آشنایی پدید نمی آید با هم خون نمی گیرند به هم نمی پیوندند جوش خور نیستند همیشه از کنار هم در حال عبورند با هم اشتراک های بسیار دارند اما از نوع اشتراک میان ناخون انگشت شست بای کسی با ذوق شاعرانه لطیفی که دارد وجودشان و برخورد مکررشان همانند کلمه محمل بی معنای ساختگی است که پیاپی پی در گوشت تکرار کنند از قبیل هایی که مفهومی و ای ندارند و ارزششان تنها در سختی تلفظشان است فقط اعصاب را میرنجاند و حوصله را سر میآورد که گاهی از بیتاقتی داد میکشی دیوانه می‌شوی میخواهی پناه بری به حرمی مسجدی تا به بهانه دعا و زیارت و مصیبت مریم و شکنجه ایسای مصلوب و امامزاده شهید مظلوم و مسموم عقده دلت را بشه کافی و یا به خانه دوست محرمت خیشاوند مهربانت رو کنی و شب غمگین و گریان زندگی را تا دل شب دمدمهای سحر با او بنشینی و یا از سیب گلشایی بگویی و باران و چتر و عینک و گالش و یا درس و کلاس و معلم و امتحان و روزمرگی ها و حراس قربت و رنج تنهایی و اغده گفتنهای مسکوت را در این نگفتنهای ملفوظ تسکین بخشی و یا به خلبت خیش بگریزی و قلمت را به داد خواهی بخانی و با او به درد گفتن بنشینی و همه آن حرفها را که در این دنیای کور و کرم مخاطبی ندارند در جان او که خدا به جانش سوگند میخورد بریزی و غم قربت را و درد تنهایی را با او که تنها یادگار آن پیمان است بگویی و از او که تنها آن پیونده است بشنوی. رابطه آشنایی با این موجودات عربعه ای همواره همانند رابطه مرد با اسبش گربه اش شطره اش سگ محله گرگ و روباه مزرعه باقی می ماند. از این حدها هرگز جلوتر نمی آید خلوت حراسنگیز و مبهوتی در بحبوه جمعیت سکوت سنگین و خفقان آوری در سرسام قیل و قال قربت در وطن بیگانگی در جمع اقوام و دوری در حلقه نزدیکان تنهای و بی کسی در ازدهام همگی و اجتماع همه این است رنج این زندگی عربعیی که بودا میگفت از چهار سرچشمه می جوشد و همیشه روحهای مهاجر و قریب را رنجور می دارد. آنها را که در زیر این آسمان دنیای اربعه بسته خاکند و زندانی آن بلهم از الها که همچون مورچه پشت زمین را سیاه کردند و با چه هر سجدی انبار می کنند. انبار کردن و به فکر حفظ حال و کسب آینده بودن زندگی کردن آنهاست. بودنشان را همواره به خاطر روز مبادا نابود می کنند. اصلا زنده اند و زندگی می کنند تا ذخیره کنند. معنی حیات و فلسفه خلقتشان در انبار است. هر گامی که به پیش می نهند برای پسنداز است. وجودشان عبارت است از موجودیشان و زنده بودنشان سازش چهار نفس مخالف سرکش است و مرگشان غالب شدن یکی از این نفوس اربعه فرمایش شیخ عجل است که چهار نفس مخالف سرکش چهار روزی بوند با هم خش چون یکی از این چهار شد غالب جان شیرین براید از قالب. خونکی زیاده از حد این مصراهای اربعه هم معلول خونکی همین آدمهای اربعه و زندگی بیمزه عربعهی آنهاست وگرنه سعدی استاد سخن و خداوند غزل و چون این شعر زشد محبعی دردها و پریشانیهای حیات در زیر این آسمان که آن انسانهای غیر عربعهی بی حساب را آن همه بیتاب کرده است برای اینها آسان است همش با داروی قست شفا مییابد مگر خودشان نمیگویند که قست زندگی را ممکن کرده است آسان کرده است وای که چه ای میخورم به حال خوششان و چه افسوسی به حال بد این هموطن دردمند من که چند گامی دور از من همکنون در گوشه فراموش این پرلاشه زخم‌กินخته است چه رنجی میبرد از زندگی و از آن دردهایی که همچون خوره روح را میخورد و های روح را میتراشد چرا قصد زندگی او را ممکن نکرد و به همین دردها خوره گرفت و روحش سوهان خورد و از زیر بار بی سمر دم زدن و قیافه های نخور نخوردیدن و حرف‌های بیهوده هزار تا یک قاز شنیدن که مجموعا یعنی زندگی به سطوح آمد و خودش را در برد. برای آدم‌های چهارپایی، چارپایی، کفر و دین، دنیا و آخرت، ماتریالیسم و ایدالیسم، سوسیالیسم و برجوازی، مارکس و محمد خداپرستی و رئیسپرستی رستم و علی انترنسیونال دوم و رایش سوم و امام ششم یکیست. بهشت این مؤمنین چهارپایه را ببین تحواور است دنیایی است دنیای بیاری، عیاشی و مصرف انبار تعام و جماع و دیگر هیچ جویبارهای بهشتیشان چیست چیر و اصل، همدم و همدلشان کیست، هور و قلمان، زنهای عظیم و کپل دمبدار خوشکل پاچه، فاصله میان دو پله نشیمنگاهشان به اندازه فاصله میان مشرق تا مغرب و برای مقدسینی هم که دارای انحرافات جنسی هستند قلمان آماده هند. بچه خشکلهای سبز خط و سیه خال زیر رو برداشته اشبگر. طول مدت هر جماعی هفت صد و هفتاد و هفت هزار سال و هفت ماه و هفت روز و هفت ساحت و هفت دقیقه و هفت ثانیه. آن هم نه از این سالهای این دنیا. از سالهای قیامت که هر روزش هفت صد و هفتاد و هفت هزار سال و چشته کثیف و متعفه به اینها میخندید؟ چرا؟ یعنی اینها ایدئال هاشان پست و زشت است چرا؟ مگر ریالیسم، ماتریالیسم، ناتورالیسم اصالت اقتصاد، فلسفه اصالت زندگی، لیبرالیسم، کاپیتالیسم سوسیالیسم، کلکتیویسم و برجوازی، هنوزم بگویم؟ باعث خجالت. ایدئالشان چیست؟ مگر این بهشتیان روشن واقعیتگرای بیگانه با ایدالیسم و دشمن ذهنیت و روح و معنویت های ماورای مادی و طبیعی نیستند اگر بهشتشان به گونه دیگر می بود متهم به اوتوپیا و تخیل و ارفانبازی و افسانه‌سازی‌های سازی های و غیرواقعی می شدند. و اکنون که صد درصد رئالیستند و آن همچه چه رئالیسم غلیظ سنگین بی غالبا یک قفلت ذهنی ساده موجب شده است که در قضاوت دوچار چنین اشتباهی شوند که خیال کنند این دو دسته مقدسهای های روشندل و ملوث های روشن با هم تناقض جوهری و ذاتی دارند اختلاف اینان در اختلاف مکان و زمان تحقق آرزوهاشان است و نیز در طریقه رسیدن بدان نه در اختلاف نوع و جنس آرزوهاشان هر دو نیازمند یک چیزند و در آرزو و جستجوی یک چیز یکی از طریق دین و دیگری از طریق دنیا آن در آن سوی مرگ و این در این سوی مرگ از این است که هیچگاه یک روشن فکر دنیاگرا به یک روشندل آخرتگرا اعتراض نمی کند که آنچه میجوی زشت است پلید است. بلکه انتقاد می کند که نه دروغ است، موهوم است، غیر ممکن است. و او اگر بتواند اثبات کند که هست، ویرا با خود در شوق و شور مذهبیش برای خوشنودی خدا و ثباب عقبا همگام کرده است همگام؟ نه همدل که همدلند و همدرد و هم نیاز و هم همه چیز هر دوشان سر و ته یک کرباسند و فقط رنگشان فرق می کند و گلوبوته ها و نقش و نگار های و وگرنه شاخه های یک درختند یکی سر به آسمان در آرزوی آب باران یکی سر در زمین به جستجوی آب جویبار. همه یک دستگاهند دستگاه مصرف کننده نه تبدیل کننده تبدیل کننده قضاهای پاکیزه و میوه های پرشهد لطیف و سبزی های رنگین و معطر به کود حیوانی آبهای های زلال و خوشگوار به زهراب البته تولیدهای های معنوی هم دارند زرنگی های موشی و حقه های مارمولکی و پوزپوزهای های سگی و کینه های شتری و تلولن های بوغلمونی و هیل های شغالی، و آرامش های خری و نجابت های گاوی و حسد های خروسی و هرز های و هوس های خوکی و باد و بروت های پلنگی و اطاعت های گوسفندی و جست و خیز های خرگوشی و طبیعی است باقه وحشی این است معنی عالم صغیر در این جور آدمک های قابلی و این است که مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری الله مقامه که از ذریه حابیل بود می گفت بارلاها این همه زمین و آسمان های بیدر و پیکر ساکت و بیدرک چه سود این همه آدم های جور واجور و همه یک جور و ناجور بی خودی چه فایده که برای هدایتشان و آدم شدنشان صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بفرستی و همه را شکنجه کنند و بکشند و به حرف هیچ کدامشان هم گوش ندهند و هفتاد فرستادی عزیز و گرامیت را به فاصله صبح کاذب تا صبح صادق به قدر رسانند و بعد هم بروند پشت پاچال دکانشان راحت بنشینند و مشغول کاریشان. باز قیامت و ترازو و بهشت و جهنم و آن همه گرفتاری ها؟ آخر فایده این همه زمین و آسمان های گل گشاد و این همه آدم های گل تر چیست؟ یک زمین و آسمان مختصر چهار تا آدم حسابی. بیخودی نیست که در تمام قصه های خلقت دنیا از اساطیر یونانی گرفته تا مذاهب سامی و فرهنگ های هندی و چینی و... چه میگویم حتی افسانه های دینی اقوام بدوی استرالیایی و سیاهان وحشی آفریقایی و سرخپوستان آمریکایی نیز هم آنچه مشترک است پشیمانی خدا از آفرینش پس از آنکه فرزندان آدم بر روی زمین به راه افتادند و تاریخ را آغاز کردند